افسان برنابی از گروه جوان و فرهنگ به نام خدای یگانی مهربان، سالم ها و قصه های بیتاریخ بی تاریخ و بی زمانند عشق و علاقه به قصه و افسانه پردازی و شنیدن قصه و افسانه در تمام طول تاریخ تمدن با آدمی همراه بوده افسانه‌ها ها و قصه های به آسونی با هر محیط اجتماعی و محلی قابل انتباغ و از این رو در عین کهنگی تازه و امروزی هن. در برمی این هفته هزار افسان افثانه را از مردمان سرزمین کهن چین تقدیم می‌کنیم به نام شاه شاهزاد قلاف برگرفته از کتاب افسانه‌های های هزار و یک شب به قلم سارا اچکی و با ترجمه از رؤیا خویی شاهزاده غلاف پسر سر شاه پادشاه تاتار و معروف به قهرمان آسیا و سیمرغ شرق بود. اون هوش زیادی داشت به طوری که از هجده سالگی با دانش زیاد پدرش یعنی تیمور شاه رو راهنمایی میکرد همه دانش و عقل شاهزاده غلاف رو تحسین میکردند. در زمان جنگ شاهزاده غلاف از روبرو شدن با دشمن نمی ترسید و با نیرو و قدرت العاده خودش مبارزه می کرد. شهستاد در جنگها و مبارزات زیادی در سرزمین های مختلف شرکت کرد و پیروزی های بزرگی به دست آورد. اما شکست هایی هم داشت که باعث شد همه دارایی و انبالش رو از دست بده و تنها و بدون آب و غذا پای پیاده بیابونها و کوها رو پشت سر بگذره بی اون که گرایه و شکفه ای از تقدیر و مشییت الهی داشته باشه شاهزاد غلاف روزی بالاخره ثروت از دست دادنش رو به دست آورد و به چین رفت در حومی شهر پکن در برابر خونه پیرزنی توقف کرد وقتی پیرزن در رو به روی شاهزاده غلاف باز کرد شاهزاده سلام کرد و گفت مادر جان، آیا حاضری غریبه ای رو خونت راه بدی اگه قبول کنی مطمئن باش پشیمون نمیشی پیرزن وقتی ظاهر مهربون و لباس های گران قیمت شاهزاده رو دید متوجه شد که اون باید از طبقه مرفه و ثروتمندی باشه بنابراین بدون معطلی جواب داد ای جوون غریبه خونه محقر من در اختیار توه خوش اومدی جوان خوش اومدی شاهزاد غلاف با خالی وارد خونه پیرزن شد و چون ذاتن آدم کنجکاوی بود در مدتی که پیرزن براش غذا آماده میکرد سؤالات زیادی از اون میکرد و پیرزن هم با خوشرویی به سوالات اون پاسخ شب بعد از صرف شام شاهزاد غلاف از پیرزن پرسی مادرجان میخوام آداب و رسوم مردم پکن رو بدونم تو این شهر چند خانواد زندگی میکنن پادشاه این سرزمین آدم خوبیه؟ عدالت رو رعایت میکنه؟ پیرزن جواب داد بله پسرم پادشاه آدم خوبیه و مردم اینجا همه اونو دوست دارن ولی من در تعجبم که چطور تو درباره اون چیزی نشنیدی چون آوازه و شهرت اون در تمام دنیا پیچیده شاهزاده خلاف پرسید پس حتما قبول میکنه که جوون غریبه برای جنگیدن در برابر دشمنانش به خدمت اون در بیاد نه پیرزن گفت احتمالا قبول کنه گفتم که اون آدم خوبیه ولی ولی افسوس افسوس که پسری نداره تا بعد از مرگش جانشین اون بشه با وجود این این مسئله بزرگترین ناراحتی اون نیست اون یه مشکل دیگم داره که خواب از چشمون گرفته و قلاف کلام پیرزن رو قطع کرد و پرسید چه مشکلی زن گفت مشکل اون شاهزاد خانم توراندخت تنها دختر اونه پسرچند به زودی توراندخت 19 ساله میشه اون اونقدر زیباست که تمام نقاشان برای کشیدن چهله زیبای اون با هم دیگه مسابقه گذاشتن شاهزاد غلاف زیر لب گفت عجب که این پیرزن ادامه داد شاهزاد توراندخت دانش زیادی داره پسرم فلسفه ریاضیات جغرافیا و حکمت میدونه خلاصه اون به اندازه یک دانشمند معلومات داره شاهزاده غلاف گفت با این اصاف دیدن شاهزاده خانم توران توراندخت لازمه پیرزن به جواب داد آ بهتره به فکر دیدن اون نباشی پسر جون غلاف با تعجب پرسید چرا مشکل چیه پیرزن جواب داد توراندوخت با همه دانش و حکمتی که داره اخلاق خیلی تند و نفرتانگیزی داره اون حتی وقتی پادشاه تبت اونو برای پسرش خواستگاری کرد به پادشاه تبت اهانت زیادی کرد و پدرش از این بابت عصبانی شد و در بستر بیماری افتاد. شاهزاد غلاف مشتاقانه پرسید. بعد بعد چی شد؟ پیرزن گفت. دخت به پدرش گفت. باید فرمانی صادر کنی که هیچ کس حق نداره با من ازدواج کنه. مگر اینکه به همه پرسش های من باسخ بده. در این صورت من راضی به ازدواج میشم. پیرزن اضافه کرد دوران دوراندوخ تحکید کرده تمام کسایی رو که نتونن به سوالات اون جواب درست بدن گردن بزنن ولی با وجود این هر روز اده زیادی برای خواستگاری اون به نزد پادشاه میان شاهزاد غلاف پرسید مادر جان تو میدونی شاهزاده توران دخت چه چیزایی رو از خاستگاراش میپرسه؟ پیرزن گفت پرسش های نامفهوم و گنگ که کسی نمیتونه جوابی برای اونا پیدا کنه شاهزاده غلاف زیر لب گفت اما من میتونم حتما همه اون خاستگارها نادون و بیدانشن من میتونم بعد به فکر فرورم پیرزن وقتی دید شاهزاده غلاف به فکر فرو رفته خنده ای کرد کرده گفت <تصفح> چیه پسر جان نکنه تو هم خیال داری از شاهزاده خانم توران دخت خواسته کنی کنی <تصفح> در این موقع سروسده یه تبل در شهر پیچید غلاف با تعجب پرسید این سروسده ها چیه؟ اتفاقی توی شهر پیرزن جواب داد این صدای تبل خبر مجازات و اعدام یکی دیگه از خاستگارهای شاهزاده توراندخت رو اعلام میکنه. شاهزاده غلاف با شنیدن این حرف با عجله از جاش بلند شد اون دلش میخواست این نمایش شوم و تماشا کنه بنابراین از پیرزن اجازه خواست به خیابون بره تا شاهد صحنه اعدام خاستگار توراندخت باشه جمعیت زیادی از چینیا توی خیابون بودن. شهزاد غلاف به همراه جمعیت وارد قصر پادشاه شد. حیات قصر پادشاه با چراغهای زیادی نورانی شده بودن. در وسط حیات چوب دار آماده شده بود. در کنارها 2000 دو هزار سرباز محافظ با شمشیرهایی از غلاف در اومده و تبر به دست استاده بودن و دیواری در برابر مردم تشکیل داده. در این لحظه صدای تبل ها و ناغوز ها بلند شد بیست صاحب مقام در چین همراه بیست نیروی محافظ که همگی لباس های بلند سفید پشمی تن داشتن از غص خارج شدند و به طرف چوبه دار رفتن اونا بعد از اینکه سه بار دور چوبه دار چرخیدن زیر چادرهایی که برای اونا شده بود قرار گرفتند جمعیت بی سبرانه لحظه شماری میکرد در این موقع محکوم که شاهزادی حدودن بیست ساله بود جلو اومد یکی از مقامات چینی دستش رو گرفته بود و جلاد که شمشیر رو توی هوا گرفته بود به دنبال اونها حرکت میکرد شاهزاد غلاف با دقت و کنجگاوی تمام ماجرا رو دنبال میکرد در این موقع مقام چینی با صدای بلند و رسا گفت شاهزاده قبول میکنی که وقتی از شاهزاده خانم توراندخت تقاضای ازدواج کردی از فرمان پادشاه مبنی بر به خواستگاری که نتونه به سوالات شاهزاده خانم پاسخ درست بده. خبر داشتی؟ این را قبول داری؟ شاهزاده جوان آروم جواب داد. بله، قبول دارم. مقام چینی پرسید: قبول می‌کنی که پادشاه و شاهزاده خانم در مرگ تو مقصر نیستند و پادشاه به هر طریقی سعی کرد تو را از این کار منصرف کنه؟ قبول داری؟ شاهزادی جوان سری داد و گفت بله بله قبول دارم فقط خودم مسئول مرگم هستم از خداوند میخوام که این خونی رو که میریزه ببخشه هنوز حرفش تموم نشده بود که جلاد با یه ضرب شمشیر تندتر از برق سرستن شاهزاده جوان جدا کرد و جمعیت فریاد وحشتناکی سر دادن ها و تبلها دوباره به صدا در اومدن دوازده مقام چینی جسد شاهزاده جوان رو داخل تابوتی از جنس آج و چوب گذاشتن و دوش خودشون هم کردند. اونا به طرف گنبد مرمرین سفید حرکت کردند. گنبد مرمرین در واقع مقبره شاهزاده هایی بود که به این سر روشت غم دوچار شده بودن. پادشاه اغلب بر سر مزار اونها می رفت و اشک میریخت. و از اونها طلب بخشش می کرد. کم کم جمعیت قصر پادشاه رو ترک کردند. ولی شاهزاده غلاف هنوز اونجا بود و به فکر فرو رفته بود. بعد از لحظه ای مردی رو در کنار خودش دید که سخت در حال گریه کردن بود. خلاف از اون پرسید آیا شما این شاهزادی گرونه بخت رو میشنقی که اینقدر در مرگ اون ناراحتی و گریه میکنی؟ مرد در حالی که گریه میکرد جواب داد بله بله بله این جو پسر پادشاه سمرغن بود و من و من حاکمون سرزمینم که باید این خبر قمنگیس رو به پادشاه برسونم خلاف پرسید این شاهزاده ی جوان چرا نتونست؟ به سوالات شاهزاده خانم جواب بده مرد گفت شهزاده چفون قبل از مرد تصویر شاهزاده خانم رو به من داد تا اونو به پدرش یعنی پادشاه نشون بدم تا اون رو به خاطر بی و بی باکیش ببخشه اما من نمی نه نه نمیتونم این خبر وحشتناک رو اعلام کنم باید باید به جای دور فرار کنم و گوش نشین بشم و تا آخر عمر برای شاهزادی جوون که خیلی دوستش داشتم <تصفح> گریو سوک مارید کنم بعد هم تصویر شاهزاده خانم توران دخت رو روی زمین انداخت و زیر لب گفت. تصویر لعنتی امیدوارم که از این به بعد تمام های روی زمین فقط از تو نفرت داشته باشند مرد این رو گفت و از خست خارجم بعد از رفتن مرد تصویر شاهزاد خانم توراندخت روی زمین و زیر پای شاهزاد غلافمو شاهزاد غلاف با خودش تکرار میکرد نه نه من اون عکس رو بر نه اونو رو بر نمیدارم نماید اون دست بزنم اما بالاخره طاقت نیاورد و عکس رو برداشت و با خودش گفت خب اونو برداشتم ولی به اون نگاه نمیکنم. کنم حتی یه نظر شهازاد غلاف عکس رو توی جیب لباسش گذاشت و از حیات غص خارج شد مدتی توی کوچه های شهر پکن چرخید بعد با خودش گفت تو تو نباید به عکس نگاه کنی نه نباید این کار رو بکنی قدر این مقاومت کرد ولی نتونست و با خودش گفت از لازم نیست برحال اگه تقدیر این باشه که شاهزاده خانم رو دوست داشته باشم کاری نمیتونم بکنم شاهزاده غلاف لحظه ایستاد و یه تصویر تصویر رو از جیب لباسش بیرون آورد و با دقت اون خیره شد بله شاهزاده خانم توراندخت دخت واقعا زیبا بود و چند دقیقه بعد شاهزاده غلاف عنوان خواستگار وارد قصر پادشاه شد نگهبانان قصر اونو به بارگاه پادشاه هدایت کردن غلاف به سراحت اعلام کرد که برای خواستگاری شاهزاده خانم توراندخت به قصر اومده پادشاه با شنیدن این حرف سعی کرد غلاف رو از این تصمیم منصرف کنه ولی نشد که نشد در این موقع شاهزاده خانم توران دخت وارد شد و با دیدن شاهزاده غلاف گفت باز هم یک قربانی دیگه بعد روبه غلاف کرد و گفت ای جوونه گستاخ تو هم دوستری مثل دیگر رقیبانت به دار آویخته بشی؟ غلاف هدای احترام کرد و گفت اگه تقدیر من این باشه باکی ندارم و بعد ادامه داد شاهزاده خانم زیبا میتونن سوالاتشون رو از من بپرسن من آمادم شخصیت خانم گفت: بسیار خوب، بسیار خوب. بگو ببینم دوست تمام شهرها کیه؟ غلاف بدون اینکه جواب داد: اون، اون خورشید عالمتابه. تمام حاضرین در قصر با تحسین حرفهای غلاف رو تایید کردند. ترندخت پرسید کدوم مادر بعد از به دنیا آوردن بچه هاش وقتی اونا بزرگ شدن اونا رو میخوره ها؟ خلاف این بار هم به تندی جواب داد دریا دریا شاهزاده خانم چون رودخونه هایی که به دریا میریزن در واقع سرچشمه دریا هستن حاضرین در قصر که از پاسخهای غلاف شگفت زده شده بودن اون رو تشویه کردن پادشاه از اینکه غلاف تونسته بود به پرسشهای دخترش پاسخ درست بده خیلی خوشحال شد و گفت خب دیگه همسر آینده تو انتخاب شد و من از این بابت خیلی خوشحالم دخترم اما شخص خانم با عصبانیت فریاد زد نه نه نه نه نه من باید پرسش زیاد زیاده دیگه از این جوون بپرسم و فردا این کار رو میکنم پادشاه فریاد زد نه ابدا اجازه نمیدم بیش از این اونو آزار بدی فقط فقط یه پرسش دیگه میتونی بپرسی و بعد با ناراحتی ادامه داد من دیگه توان شرکت در این مجازات های بی رحمانه رو ندارم در این موقع قلاف پادرمیونی کرد و گفت پادشاه من به خوبی میدونم که شاهزاده خانم از مردان نفرت داره و می بینم ایشون نمیخواد به قولش عمل کنه اشکالی نداره من از ازدواج با شاهزاده خانم منصرف میشم به شرط اینکه شاهزاده خانم هم به پرسش های من پاسخ بده شاهزاده خانم با غرور گفت من شرط تو رو میپذیرم و به تمام مقدسات سوگند یاد میکنم که در صورتی که نتونم جواب سوالات این جوان رو بدم با اون ازدواج کنم در این موقع شاهزاده غلاف سوال خودش رو بیان کرد و گفت خب کدام شاهزاده بعد از مدتی که حتی نونش رو گدایی میکرد اکنون پیروز و خوشبخت و شاده شاهزاده خانم هر چی فکر کرد نتونست جوابی رو پیدا کنه پادشاه که دید دخترش نتونست جواب سوال غلاف رو بده گفت دخترم بهتر قبول کنی با این شهزادی جوان ازدواج کنی چون هیچ وقت همسری بهتر از اون پیدا نمی شاهزاده خانم سکوت کرد نگاهی به غلاف انداخت و گفت باشه من به قولم عمل میکنم به پادشاه تصور داد تا مقدمات ازدواج اون دو رو فراهم کنن خلاصه شاهزاده قلاف و شاهزاده خانم توران با هم دیگه ازدواج کردن و صاحب دو پسر شدن پسر بزرگتر بعد از مرگ قلاف با همون درایت و دانش پدرش حاکم مردم چین شد افسانه شاهزاده غلاف رو از مردمان سرزمین چین شنیدید برگرفت از کتاب افسانه های هزار و یک شب به قلم سارا اچکهی با تری از رؤیا خویی. ژان کوکتو نماشنام نویس نقاش و شاعر فرانسوی میگه افسانه ها دروغی که همیشه راست میگن هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار الهام اشجع اجرام مهران دوستی صدا بردار هدیه سیفی تالی کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر بدرو.